نسل آیات آوردن که اینها بعضی‌هاش سن خدا می‌فرماید در ستت ایام مثلا زمین آسمان و خلق کردیم بعضی هست فی یومین یا یه دونه هست فقط در فیها اقواتها فی اربعه ایام شما گفتن مراد شما اگر به لغت مراجعه کنید ببینید در تفسیری معنای یوم چند مصداق رو معرفی میکنن که یوم در اون مصادیق استعمال بشه ای که همین دوازه ساعت مقابل دوازه ساعت شبه یومه ای که ادهر اد یومان یوم لکه و یوم علیشه روز سفتات سالم یعنی یوم منظور از این ایام دوران زمین است که چند میلیون طول میکشت تا زمین یا سایر کرات ساخته بشن بله دو داری طول کشید بعد از ساختن اصل زمینی مثلا شرایط فرمشه گیا سبشه حیوانات بتونن بخورن ایسان بتونی زندگی کنه بله مزور این گاه گاهی تا ایام فرموده مال مجموعه بله مجبوع در شیش دوره زمین شناسی زمین ساخته شد اما شرایط بارآوری نبات و گیاهی نرفات دو دوره تور کشید چون کره ملتهب بود سطحشم ملتحب بود جوفشم ملتحب بود, جوفش هم ملتحب بود. در اثر حرکت طولانی در زمان پوسته روش سیف شد سرد شد قابل کشت زار شد اما توش هنوز ملتهبه آتشه بله این زلزله از آثر اونه براور این ای بده تم طول کشیته قابل کشاورزی باشه گنه وجوه سبز کنه که بخورن بخورد از اول اینجوری ساخته نشد سم از توا عرش که داره خود وقتی کرات خنکن نمیشه ولی کنی که با دوره ام پشتر ام جا این, کار این کار بشه این کار بشه شد اینجوری بله بشهر تدبیر ما خلقه الله شد